مستسقم مستاجر قبلی بخش اول شورش از وقتی تررکوفسکی از وجود تاته‌ای برای نابودیش آگاه شده بود از اینکه فرایند تغییر شخصیتش را تا حد ممکن کامل و بیعیب و نقص کند لذت می می‌برد حالا که می‌خواستند به رغم میلش او را به آدم دیگری بدل کنند پس او هم نشانشان میداد که چه توانایی‌های ای دارد آنها را توی زمین خودشان شکست میداد و جواب نقشه شیطانیشان را هم با یکی از نقشه های خودش میداد مغازهی که ترلکوفسکی واردش شد بوی گرد و خاک و پارچه نمدار میداد پیرزنی که مسئول اداره آنجا بود حتی به اندازه سر سوزنی هم از ظاهر ترلکوفسکی تعجب نکرد ترلکوفسکی فکر کرد او لابد باید به دیدن چونی صحنه عادت داشته باشد ترلکوسکی زمان زیادی را صرف دیدن و انتخاب گیس هایی کرد که پیرزن برای او آورده بود. کلاهگیس‌ها گران‌قیمت‌تر از آن بودند که انتظارش را داشت. با این حال، در انتها گرانترین کلاهگیس را خرید. کلاهگیس را که روی سرش گذاشت، بیشتر شبیه کلاه خودی از جنس خز بود. ابدا ظاهر ناخوشایندی نداشت. بعد هم بدون آن آنکه کلاهگیس را از سرش بردارد، مغازه را ترک کرد. در نسیم خنک خیابان ترههای بلند مو همچون چینهای پرچمی در احتزاز با ملایمت به صورتش میخوردند با اینکه انتظار داشت آبران پیاده بیستند و به او زال بزنند اما هیچکس توجهی به او نشان نداد بیهوده تلاش کرد تا اثری از خصومت را در نگاه دیگران بیابد اما آنها صرفا بیاعتنا بودند و اصلاً چرا باید غیر از این باشند مگر تررکوفسکی مانعی بر سر راهشان بود یا جای آنها را تنگ کرده بود با این سر و وضع احمقانه که برای خودش ترتیب داده بود کمتر از دیگران برایشان مایه زحمت و دردسر بود چون او حالا با چش‌پوشی از بخشی از حقوق انسانیش دیگر یک شهروند کامل محسوب نمیشد. دیگر بود و نبودش هیچ اهمیتی نداشت چیزی که به ملایمت به صورتش میخورد، پرچم نبود پارچه کهنه ای بود که هستی شرماور او را از نظر پنهان می کرد. بسیار خوب، حالا که اینطور بود، پس او هم این بازی را تا پایان منطقیش دنبال می کرد. تمام بدنش را با نوار بانپیچی پیچی می تا هیچکس نبیند او به چه جزامی وحشتناکی تبدیل شده است. به فروشگاه دیگری رفت و یک دست لباس زنانه یک زیرپوش زنانه، چند جفت جوراب ساق بلند و یک جفت کفش پاشنه بلند خرید. بعد مشتاق برای عملی کردن نقشش به آپارتمان بازگشت. با خودش گفت باید زودتر دست به کار بشم تا ببینند چه بلایی سر من آوردند. و خودشون میترسن و خجالت میکشند و دیگه حتی جرأت نمیکنند به من نگاه کنند. تا آنجا که بدن ضعیفش اجازه میداد به سرعت از ها بالا رفت. در را که پشت سرش بست، احساس هیجان غریبی که داشت، به خنده هیستریک بدل شد. صدایش بسیار بم و مردانه بود. باید تمرین می‌کرد تا بتواند با صدای نازک و لحن زنانه صحبت کند. مدتی خودش را با به زبان آوردن عبارات سبک مغزانه زنانه سرگرم کرد. اما عزیزم، اونقدرها که تظاهر میکنه جوون نیست. اون باید همسن و سال من باشه. بعد ناگه هم به گریه افتاد. من حاملم. استفاده از صفتی که مشخصا به یک ویژگی زنانه دلالت داشت واکنش شدیدی را در او برانگیخت. بارها این کلمه را تکرار کرد. گاهی آرام و درگوشی و گاهی با صدای بلند. آینه را از روی دیوار برداشت و روی قفصه کشدار گذاشت. مقابل آینه ایستاد. تنها کلاگی سش را که به هیچ قیمتی حاضر نبود از خودش دور کند، به سر داشت. لباسهایی را که از فروشگاه خریده بود پوشید. این بار، وقتی به آینه نگاه کرد، تصویر یک زن را دید. تررکوفسکی مات و مبهوت شده بود. یعنی خلق یک زن به همین سادگی بود. اطراف اتاق، شروع به قدم زدن کرد. سعی کرد نحوه راه رفتن استلا را تقلید کند. وقتی از روی شانه به عقب نگاه کرد، تصویری که از خودش در آینه دید، حتی به مراتب واقعی تر و پریشان کننده تر بود. اگر کسی از پشت سر به او نگاه می اینطور به نظر می رسید که یک زوج در کنار هم ایستادند. با همان لباسهایی که به تنداش روی تخت دراز کشید و کم کم خوابش برد. دستوز شاوری که ابتدا نمی توانست آن را تشخیص دهد او را از خواب بیدار کرد سعی کرد فریاد بزند اما تنها صدایی که از گلویش خارج شد صدای قلقل حباب های خون بود همه جا را خون گرفته بود ملافه ها را ترکیبی از خون و بزاق دهان خیز کرده بود درد غیرقابل تحملی درون دهانش زغزغ می کرد اما جرأت نداشت برای پیدا کردن محل درد زبانش را حرکت دهد تلو تلو خوران به طرف آینه رفت لعنتی باید از قبل انتظارش را می داشت. سوراخ بزرگی داخل دهانش به چشمی میخورد یکی از دندانهای پیشین بالایی مفقود شده بود در دو وحشتی که در گلویش جمع شده بود او را به حال تهوو انداخت بدون آنکه بداند چه میکند كوركورانه از یک سر اتاق به سر دیگران تلو تلو میخورد گریه میکرد و خون بالا میآورد ترسش آنقدر زیاد بود که تاب تحمل آن را نداشت از حد آگاهی و شعورش بیرون بود و به معنای دقیق کلمه، تررکفسکی را زیر بار سنگین خود خرد میکرد کار چه کسی می توانست باشد آیا چند نفری وارد اتاق شده بودند و در حالی که یکی از آنها روی سینه ی تررکوفسکی نشسته بود تا بی حرکت نگهش دارد دیگران دندانش را کشیده بودند یا یک مصدور حرفه را برای این عملیات اجیر کرده بودند. و خود دندان چی ؟ حالا کجا بود؟ مرافه خونالود و روبالشی را به امید یافتن دندان مفقود شدهش زیر رو کرد. اما بعد ناگه ها متوجه شد که احتیاجی به جستجو نیست؟ خودش خوب می‌دانست که دندان کجاست. آنقدر مطمئن بود که در آن لحظه حتی زحمت اثبات آن را به خودش نداد. ابتدا مقابل ظرف دستشویی ایستاد و به آرامی و دقت بسیار دهانش را شست و شداد. بعد، کمد دیواری را کنار کشید و از سوراخ پشت آن دو دندان پیشین را بیرون آورد. روی هر دو دندان را لایه از خون گرفته بود. و با اینکه برای مدت طولانی آنها را روی کف دستش نگه داشت و سر و شکلشان را برانداز کرد، باز هم توانست حدس بزند کدام یک از دندانها مال اوست. از روی پرتی دستش را بالا آورد و صورتش را با رنگ قرمز خون لکه دار کرد. چه می خواستن او را از پنجره بیرون بیاندازند؟ باید حدس میزد که چنین رفتاری ممکن است برایش گران تمام شود. هرچه چه مسخ او سریتر پشت سر گذاشته به همان نسبت زمان اجرای مراسم اعدام هم جلوتر می افتاد. حالا دیگر همه چیز دستگیرش شده بود به جای کمک و همدستی با همسایه ها در نقشه شیطانی که برای او کشیده بودند باید تمام توانش را به کار میگرفت تا آنها را عقب براند عجب احمق نادانی بوده او با رفترش آنها را متقاعد کرده بود که مسخش کامل شده و آنها آنقدر از خودشان و کارآمدی ترفندشان مطمئن بودند که همین برایشان کافی بود. باید به آنها نشان میداد پیش از آن که حتی کوچکترین امیدی برای دست یافتن به اهدافشان داشته باشند، کارهای انجام نشده بسیاری در پیش دارند. و ساختن یک سیمان شور از ترالکوفسکی آنقدرها هم که در ابتدا به نظر می‌رسیده آسان نبوده. خیلی زود این را به آنها ثابت می‌کرد. آثار آرایش را از روی صورتش پاک کرد. لباس خودش را پوشید و بیرون رفت. آیا اتفاقی بود که موسیو در خانهاش را درست در لحظه ای باز کرد که تلرکوفسکی داشت از کنارش رد میشد؟ صاحبخانه خانه با بد به او نگاه کرد و با حرکت انگوشت اشارهش به او فهمان که قصد صحبت با او را دارد. بگید ببینم موسیو تلکوفسکی؟ شروطی رو که وقتی برای اجاره آپارتمان به اینجا آمدید بهتون تذکر دادم هنوز به یاد دارید؟ ترلکوفسکی خیلی تلاش کرد تا مستقیما صاحبخانه را به جنایاتش متهم نکند. هر طور بود، خودش را کنترل کرد و با خوشرویی جواب داد. البته که به یاد دارم، منظورتون چیه؟ یادتون هست درباره نگهداری از حیوانات چه گفتم؟ سگ گربه یا هر حیوان دیگری کاملا درباره آلات موسیقی چطور اینم خوب به یاد دارم موسیازی و چیزی که درباره زنها گفتم چطور اونم یادتون هست طبعا شما در این مورد بسیار حساس بودید در این صورت بگید ببینم چرا شما زن به خونه آوردید اما من هیچ وقت زنی به خونه نیاوردم صاحبخانه با خشم و اتاب گفت خودتونو با به اون راه نزنید من خوب میدونم از چی حرف میتونم چند لحظه پیش که کنار آپارتمان شما رد میشدم به وضوح شنیدم که داشتید با یک زن حرف میزدید میخاید این کار کنید ترلکوفسکی گیج شده بود آیا ممکن بود هدف اصلی تمام این نخشه ها فقط فراری دادنش از آپارتمان باشد اما نه به این سادگی هم نبود آیه چیز دیگری در میان بود اما در این صورت سیاسی از بیان این حرفا چه منظوری داشت ترلکوفسکی سرش را تکان داد متأسفم موسیوزی اما مطمئنم سوی تفاهم شده هیچ زنی در آپارتمان من نیست درست یادم نیست اما شاید داشتم برای خودم آواز میخوندم. صاحبخانه با تاش روی گفت به این میگن عذر بدتر از گنا اما من کاملا مطمئنم که صدای یک زن و شنیدم. یک بار دیگر تررکوفسکی مجبور شد اشتیاق فراوانش را به اینکه که آگاهیش را از حقیقت به رخ این مرد بکشد، مهار کند. اما این بار چندان سخت نبود. داشت به این موضوع عادت می کرد. تررکوفسکی گفت، هر کسی ممکن اشتباه کنم و, سی و سی. من هیچ وقت با آوردن زن به اینجا قراری را که بین خودمون گذاشتیم زیرپا نمیذارم. هیچ باید نیست صدایی را که فکر می کنید از آپارتمان من شنیدید با صدای کس دیگه ای تو راه پله یا حتی یک آپارتمان دیگه اشتباه گرفته باشید. فضای یا آگوستی که خونه های قدیمی گاهی باعث چنین سو های عجیبی میشن. با این جمله پشت را به صاحبخانه کرده و از پله ها پایین رفت. در حالی که به خاطر آخرین اشاره به خودش تبریک می گفت. اگر موسیوزی میخواست با او بازی کند، ترلکوفسکی هم به او نشان میداد که توان بازی را دارد. بدون شک او در این لحظه میرفت به دیگران اعلام کند که قربانیشان هنوز کاملا برای بالا رفتن از سکوی اعدام آماده نشده است. ترلکوفسکی توانسته بود مهلت کوتاهی به دست آورد. مستقیما به آن طرف خیابان رفت. پیش خدمت با سر به او خوش آمد گفت و بدون آنکه منتظر سفارش ترلکوفسکی بماند یک فنجان شکلات و دو قطعه بیسکویت برایش آورد. ترلکوفسکی چیزی نگفت و منتظر آن تا پیشخدمت فنجان شکلات و بیسکویت را جلوی او روی پیشخان بگذارد. بعد به پیشخدمت گفت چیزی که الان میل دارد یک فنجان قهوه است. پیشخدمت با تعجب به او نگاه کرد. بعد در حالی که به فنجان اشاره میکرد گفت: یعنی امروز شکلات نمی‌خواهید؟ ترلکوفسکی قاطعانه جواب داد: نه. گفتم یک فنجان قهوه میخوام پیشخدمت رفت تا با صاحب رستوران که کنار صندوق ایستاده بود مشورت کند تلرکوفسکی نمیتوانست از این فاصله چیزی از حرفهایشان بشنود اما متوجه شد که پی بسته به او نگاه میکنند پیشخدمت، خدمت که تا حدی رنجید خاطر به نظر میرسید بالاخره برگشت و گفت متاسفانه دستگاه قهوه جوش کار نمیکنه مطمئنید که شکلات نمیخواهید ترلکوفسکی گفت من قهوه خواستم اما حالا که امکان آماده کردن قهوه نیست لطفا برام یک گیلاس شراب قرمز بیارید لابد سیگار گالاز هم ندارید پیشخدمت سرش را تکان داد و چیزی شبیه این که سیگارهای گالازش تمام شدهاند زمزمه کرد ترلکوفسکی بدون عجله و با لذت فراوان شرابش را نوشید و بعد به آپارتمانش بازگشت روز بعد همراه با پست صبح یک احزاری از پاسگاه پلیس محلی به دست تررکوفسکی رسید. ابتدا فکر کرد که احتمالاً باید به موضوع سرقت مربوط باشد. اما رئیس پلیس بلافاصله او را از اشتباه درآورد. رئیس پلیس بدون مقدمه سرش فریاد کشید: "چند شکایت از شما به دست ما رسیده." شکایت؟ تررکوفسکی به هیچ وجه آمادگی این یکی را نداشت. بله گزارش‌های زیادی از شما به دست ما رسیده مسیا ترلکوفسکی اینطور که معلومه شما شبها مزاحم تون میشید. ترلکوفسکی بی اختیار گفت خدایا متأسفم قربان ولی شما واقعا باعث تعجب من شدید هیچکس تا به حال چیزی در این باره به من نگفته و من هم ابدا عادت ندارم شبها سر و صدا راه بندازم من یک کارمندم و باید هر روز صبح زود از خواب شم. ضمننا دوستان معدودی دارم و هیچ وقتم خونه از کسی وزیرایی نمیکنم. پس می بینید که حرفهای شما واقعا باعث تعجب من شدند. رئیس پلیس در حالی که شانه هایش را بالا میداد گفت: «شاید اما این موضوع به من ربطی نداره. من فقط اینو می میدونم که چند شکایت درباره مزاحمت های شبانه به دستم رسیده. وظیفه من حفظ و اجرای قانون در این ناحیه است. بنابراین یک بار برای همیشه بهتون هشدار میدم. نمیدونم شبها چه کار میکنید، اما هرچی که هست، بهتر تمومش کنید. موسیو ترلکوفسکی. ترلکوفسکی، ببینم این اسب روسیه. ترلکوفسکی با صدای آرامی گفت، بله اینطور فکر میکنم. شما روز هستید؟ تابعیت اینجا رو گرفتید؟ خیر من در فرانسه به دنیا اومدم. خدمت سربازی رو گذروندید منو به خاطر یک تصادف از خدمت معاف کردن آقای رئیس. لطفاً کارت شناساییتونو بدید ببینم. ترلکوفسکی کارت شناساییش را از کیفش درآورد و به طرف رئیس پلیس گرفت. رئیس پلیس به دقت آن را بررسی کرد. وقتی کارت شناسایی را به ترلکوفسکی برمیگرداند، از چهرهش پیدا بود که امیدوار بوده، ایرادی در آن بیابد. گفت: خوب مراقبش نبودید، گوشه‌هاش پاره شدند. ترلکوفسکی لبخند ماتم زده ای لب آورد. به امیدان که این عمل به عنوان یک جور آسر خواهی پذیرفته شود. رئیس پلیس گفت بسیار خوب، این بار تنها به یک اختار اکتفا میکنم. اما نذارید باز هم از این قبیل شکایت ها دست من برسه. من نمیتونم اجازه بدم کسانی که فقط به فکر خودشون هستن برای دیگران مزاحمت درست کنند. ترلکوفسکی گفت خیلی ممنون. اما به شما اطمینان میدم که من آدم بسیار آرامی هستم. اصلا سردر نمیارم که چرا باید از من شکایت شده باشه. رئیس پلیس با حرکت دست او را مرخص کرد. تا همینجا هم به اندازه کافی وقتش را با او تلف کرده بود. ترلکوفسکی سر راهش به آپارتمان کنار اتاق سرایدار ایستاد سرایدار او را دید که داشت به پنجره اتاقش نزدیک می‌شد. اما طوری نگاهش کرد که انگار اولین بار است که او را میبیند. ترلکفسکی گفت. کی از من به پلیس شکایت کرده؟ شما میدونید کار کی بوده؟ سرایدار لبهایش را جمع کرد. اگه اون همه سر و صدا به راه نمی کسی از شما شکایت نمی کرد. نباید کسی غیر از خودتون را مقصر بدونید. از این گذشته من چیزی نمیدونم. ترلکوفسکی اصرار کرد. پس واقعا شکایتی در کار بوده. کار همون پیرزنی نیست که میخواست از اون یکی شکایت کنه. شما هم امزاش گردید. سرایدار امدن و گستاخانه پشتش رو به او کرد. انگار دیگر نمیتواند بیافه ای او را تحمل کند. گفتم که چیزی نمیدونم. دیگر هم از من بازخواست نکنید. من چیزی برای گفتن ندارم. شب خیر. اگر میخواست از شر همسایه خلاص شود، باید زودتر دست به کار میشد. دامی که برایش گسترده بودند، به سرعت تنگتر میشد. اما این کار به این سادگی ها هم ممکن نبود. سعی کرد از هر نظر طبیعی رفتار کند. درست مثل گذشته. اما پیوسته خودش را در حال انجام کارهایی میدید که پیش از این هرگز برایش سابقه نداشتند. حتی نهوه فکر کردنش هم تغییر کرده بود از همین حالا احساس می کرد که دیگر تمام و کمال همان ترلکوفسکی همیشگی نیست. چه اتفاقی برایش افتاده بود؟ چطور می توانست پاسخ سالش را بیابد؟ اگر می خواست به بیراهه کشیده نشود، باید دوباره خود واقعیش را پیدا می کرد. اما چگونه؟ مدت ها بود که هیچیک از دوستان قدیمیش را ندیده بود و تقریبا به ندرت به پاتاخهایی که پیش از این محل قرارهایش بود سر می زد. کم کم به سایه مبهمی از مردی بدل شده بود که توسط همسایههایش از صحنه روزگار محو میشد و چیزی که سعی داشتن جایگزین حیت او کنند تصویر محو و مبهمی از سیمان شول بود. مرتب با خودش تکرار می کرد، من باید دوباره خودم بشم. چه چیزی از او فردی خاص میسا؟ چه چیزی او را از دیگران متمایز می کرد؟ نقطه ارجاعش چه بود؟ چه چیزی با می شد فکر کند من این هستم و آن نیستم بیهوده سعی کرد پاسخ سوالهایش را بیابد. اما در آخر چاره ای نداشت جز اینکه بپذیرد پاسخی برای سوالهایش ندارد سعی کرد کودکی‌اش را به خاطر بیاورد به یاد هایی که متحمل شده بود و بعضی تصوراتی که در گذشته داشت افتاد اما هیچ کدام از آنها چیز خاص و منحصر به فردی نبودند چیزی که بیشترین اهمیت را داشت چون خیلی خوب آن را به یاد می‌آورد. واقعی بود که حتی به زحمت می‌شد آن را نشانه از هویتش دانست. یک بار در دوران مدرسه، از معلمش اجازه گرفته بود به توالت برود و چون خیلی طول داده بود، دختر کوچکی را فرستاده بودند تا ببینند چه اتفاقی برایش افتاده است. وقتی به کلاس درس برگشته بود، معلم به او نگاه کرده و با صدای بلندی که همه بشنوند گفته بود: خب ترلکافسکی کم کم داشتیم نگران می شدیم که نکنه افتاده باشی اون تو هم کلاسی هایش به او خندیده و او را هو کرده بودند و ترلکوفسکی از خجالت و دست سرخ شده بود آیا چیزی شبیه به این واقعه کافی بود تا او را به عنوان یک فرد معرفی کند؟ به وضوح می توانست احساس خجالتش را به یاد بیاورد اما دیگر مطمئن نبود که دلایل آن را هم می فهمند.